گر تو در آب ماهی شدی، اگر چون شبن در سیاهی شدی، اگر چون ستاره شدی به ستر ریز روی زمین، پاک میر، بخواهد پدر از تو خود کین من، چو نه که است بارین من، از آن نامداران و گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان، که سوراب کشش تو، افکند گاو رمی خواست کردن ترا خواست. دار. به نام خدا بخشنده اندیکشن دی سلام از می کنم خدمت شما نه وندگان از ایسی رادیو شما برنامه پنجره های روی محتاب رو میشنوید و دکتر فریدون جنیدی کارشناس یکشنبه شقهای ما هستند که الان در استودیو حضور دارند. من سلام ازمی کنم خود بنایتون. سلام. درود به شما شما پاشید. وقتمگیم بود که منم قرار دمشت بر دل من هم نشرف. همه هزاره هست. و داستان رستم و صحرا. شما من تلخونهای برنامه رو خدمتون عرض میکنم 222-400-85-220-400-85-220-588-2-0-220-588-2-0 و شماره پیامک ما 35002 58. 358. پایگاه اطلاع رسانی ما W W W.رادیو فر هنگ دات I R H. داستان هزارهاست متوجه نشدم. این هزارها ایرانیان این داستان رو با آشکو آهو خوندند اون دند را گلیستم همینه ولی فرزند اونم به دست پدر در راه می هم. در راه می هم, هم. خب بفرمون از گفتار و یکی داستان به از گفته باستان پیوند یعنی شعر به اونه شعر گفتم بارها فردوستین رو می تکرار میکنه که پیوند را راه داد اندرین چون که از دقیقه یاد میکنه که گرفتن به بر آفرین که پیوند را راه داد اندرین یعنی داستان شاهنامه رو آغاز کرد به سرایش شعر به پیوندم از گفته باستان یعنی شعر واژهی پیوند یعنی پیوستن واژه بایدیگر چنانکه آهنگین بشود این یعنی سرودن شعر در زبان فارسی ز موبت گونه برداشت یاد که رستن یکی روز از بامداد غمین بد دلش ساز نخشی کرد کمر بست و ترکش پرستی کرد. از کرد چون نزدیک شهر سمنگان رسید بیابان سراسر پر از گور دید برفروخت چون گل رخ تاج بخش بخندید و از جاوی برکند رخش به تیر و کمان و به گرز و کمان دیفت کند بردشت نخچیر چند نخچیر یعنی نخچیری اون چیزی که ما در تلفظ امروز میگیم اما در خراسان هنوز به همین گونه بایان میشه توجه که سوم مرد عمل یک زنی یک زنی برفت اند. چرا این گونه خورستانی بنابراین این امروز ما در تهران یا در گویش ماسه میگیم مردی چند. این ندرسته مرد چند باید باشه. این ای به منی یک پسنده که در زمان پهلوی همهارو کار میرفته مرده یعنی یک مرد. اسپه یعنی یک اسپ. به تیرو کمانو به گرزو کمند بیرد کند بردشت نخچیر چند زخار و زخاشاک و شاخ درخت که آتشی برفروزید سخت که آتش پروکنده شد پیلتم درختی بجست از در بابزن از در اینی شایسته بابزن نیستیخ کمان شون میخواد گرزو یک جا برای با با بابزن یعنی سیخ که باشن باید چیزی باشه مثل درخت یکی نرگوری بذار که در چنگ او پردر مرگی نخلخت یعنی خنجیده نشود یعنی ورد نگاشت جو شد از هم به کندو بخورد زمست بغضاستفهانوش برآورد ورد گرد بخورد تو براسود از روزگار شمان و چون رخش در مرد. چون بردشت بردشت بر رخ را یافتند، سوی بعد کردنش بشت آفتند. گرفتم دوبور در پرویان به شهر، همین هرکس از رخ دوستند بر مقصود اینکه رو که باره پیلتند بود، بردن به شهر تا با مادی اونها آمیزش بدن تا کررهای نجودی خوب پدید بیاد. چون بیدار شد رستم از خواب خوش به کار آمدش، آوره کش من چند با که اسب،, اسب خوب اون استی که وقتی که میکنه یکی از ویژگیاش این باشه که دستشو بلند بکنه از روی زمین بالا بیاره زانو رو, رو خم بکنه دست رو بیاره بالا و بذره زمین ولی اگر این کار نکنه چون اسب یک جانور سر هواست، هم به آسمون نگاه میکنه و از از اون پشت میخواد به سوار خودش ضرزه به سوارش میگاه کنه ج وپل خود چ می بینه. و سنگ اگر توی جاده باشه و دست اسب سنگ بخوره دول سوارخ رو کله میکنه یعنی با سر بخور زمین د میکشید بلند نکنهطور تو بکشید اتفاق می می میکنه به ار داره بر اگر آه. سنگ باشه. دست کشی که یک استفوت خوب است دستکش باشه. همین چون بارگی را نیافت سراسر سراسیمه سوی سمنگان شده افت. چون از دیکی شهر سمنگان رسید خبر زود به شاه و بزرگان رسید که آمد پیاده گرد تاج بخش به نخجی گرد زو رمی رخش به زو شاه سمنگان چه بود؟ که یارست با تو نورد آزمون؟ بدین شهر ما نیکاه تو این ستاده فرمان و راه تو این تن و خواسته زیر فرمان توست خواسته این یعنی مال و دارایی. سر انجمن، ارجمندان و جان آن توست به دو گفت به دو گفت رخشن زمان دور شد گام و فسار مخصوص اینکه که وقتی که اصف روها کرد برای که پسنده که خوراک بخوره، علف بخوره، بعد لگومش از سرش بردارون تا بتونید با... چی غذا بخوره. اگر که لگوم پشیدم اون به نه، داشت نمتنوش. تو سرمان نشان پی است. نشان پی یعنی پای نشان پای یعنی است. پای هست. از اونجا کجا جویبا رو نیرسه یعنی وقتی که به جویبا رو نیرسه دیگه پای عصب نشانه پای عصب زیده نمیشه پیزدن روی سبزه ها دیگه روی سبزه ها پیزدن یعنی به دنبال رو به پای جانواری رفتن فعلا بیاد خیلی از چیز ها هست که سر کوه بلند نی میزنم نی شسور رو کرده اون پی میزنم پی. یعنی دنبال رده پای شطور میرم. تو رو باشه در باجویی سپاس. یعنی اگر رخش را پیدا کنی من سپاس از تو دارم. بباشم به پاداش نیکی شناس. و ریدون که منظم من ناپدید سران را و بسیر سر بخواهم برید. به دو گفت شاهی مرد، نیارد کسی، نیارد اینی یارشتن اینی جرعت کردم، نیارد کسی با تو این کار کرد، تو مهمان من باشو، تون دیمه کن، تو گردد سر و سرسخون. یکم به می شاد دارین دل، و آزاد دارین دل، نماند پی رخش فرخ نهان، چنان باروی نامور به جهان. اون توجی مشی ممکن نیست که رخشناب حدیت بشه حتما پیدا میشه یه چیزی بور اینا اونوری از به نانوری حتما پیدا میشه چیزی دموله صاحب میشه نه نم. نمیشه پنهانش کنم این جور اینکه نمیشه اون پنهانش رو نمی‌تونه بره تا گفتار شاد شد روامش رندیشه آزاد شد سازونتی رفتن سوی خان و شد از مجده شادان به, به مهمانی او رفت. از اینکه اینکه پیدا پیداخت شد رفت به مهمانی او. سفهبت و دودا در کاخ جای همی بود بر پیش او بر بپای. پای. به شهر رو زلشگر مهان رو بخوند. ببینید این پادشار سمایوانه ولی ایستاده جلو مهمان. من آخرین باری که چنین چیزی دیدم با, با یک گروه از فیلم بردار می رفتیم به آتشالی بوزین بهر نزدیک روستایی به نام بوزنی که البته تلفز تلفظ برزنان می میگن و وقتی که اون مهمانداران شناختن که من پدر منو شناختن بهجا به آوردن نهایت مهر کردن و برای ما که سفره پنگ کردن کسی که از همه پیرتر بود جنو در دست بسته دست بسینه بس ایستاد. و یکی یکی کوچیکترها هم تو پست سر او همه تو را رو ایستادن. من هر کار کردم شما به گفتم نه. شما مهمانی شما. متاسفانه چند تا از این ستادداران رو این فیلم این اینها نمیشن خواهم این این همه احترام رو دهکم میکنن. شوخی میکردن به خودشون ولی خوب من اون ترکیه شایسته بود و من احترام گذاشتم تا وقتی که خوراک خورده شد بعد همون. مرد پیر بزرگ کمند سفره را جمع کرد دست جمعات ها را بردم بعد این آین با پایان رسید این همینجاست که میبینیم شوه سمنگان پیش روستم ایستاده پس ایستاده تا اون چه بخواد سفه بود دو داد در کاخ جای همی بود بر پیش او بر به پای شیخ شهر زرش کرد مهان را بخوند سزاوار با او به شادی نشاند سزاوارم اینجا دونه دونه این غاجه ها هر کدام بفون داره یعنی کسانی که بزرگتر بودن بار درست نشستن کم کم کم تا کسانی که پایین درست بودن یعنی هر کسانی که بالا بشین هر کسی در جای خودش سزاوار میشستن با سازان البته من در داستان رامشگر مازندارانی گفتم که این باید خوش نوازان. رود ساز. ساز یعنی کوک کردن. این با فراموش شده و امروزم هیچ کدوم از موزیکی ما این رو نمیدونند. کوک میگن. ساز کردن درسته. و من در کتاب زمینی شراخت موسیقی ایرانی این رو شکافتم. رود نواز یا خوشنواز کسیست که می نوازه و رودساز ما نداریم مگر رودساز کسی که رود رو ساز میکنه یعنی کوک میکنه بنابراین در همه نسخه آمده رودسازان که باید بخونیم خوشنوازان نشستند با خوشنوازان به هم بدان تا تهمتن نباشد دو جم شد مست و همگاه خواب آمدش همی از نشستن شتاب آمدش از آوار جای آرام و خواب، بیا راست، بنهاد، مشکول گلا مانامی ازدان پاک دکتر دکتور واقعا وظیفی مادبییان ادبیات در برابر بیات افود که در کتاب درسی در سیامده چیست بیتی که هم در امتحان نهایی مطرح می‌شوند، هم در کنکور شما را هم در کنکور شما را به خدا بفرمایید چه کنیم با سپاس سکان خاانمه بودآور قضیم. درود بر شما که این همه می به شانومه ببینید هزار ساله که مردم ایران با این عبیات عسیده زندگی کردن می بستن به این عبیات همین آغاز زمانی که ما شروع کردیم به شانومخانی بسیار کسان بودند که به ما پنخوش میکردن و بسیار صخیف بسیار سوست رو از آن رو تیدرسی و از ما میپرسدن پس این مثلا همون که شهر نانوازاده است رو کی سروده؟ یعنی پایفشاری میکردم روی اون چیزهایی که به عنوان شاهنامه خونده بودن از این جریان هزار سال میگذره خب بالاخره این پای هست اکنون به یاری یزدان درست بعد از هزار سال این کار شکاکته شد و در تمام این عبیات یک و یک دلائل اینکه هر بیت از آن فردوسی نیست. چرا نهار آوردیم؟ باید مدتی بگذره تا جامعه ایرانی اون حافظه تاریخی خودش رو که آمیخته به عبیات افسدنست اون رو فراموش کنه گفتار پاک فردوسی رو از گفتار ناپاک افتراندگان جدا کنه زمان میخواد. از جمله این اینکه یکی از کارها که میتونم بکنم در ایران ادبیات و استادان عربیات هست که به این جریان توجه کنم. با امیدی از من اون بازتابی که از ایرانیان دیدم در عرض همین یک سال می بینم که خیلی زود نه هزار سال زمان بخواد. بلکه در عرض چند سال به اینجا خواهیم رسید که جامعه ایرانی بپذیره که عربیات حتیده رو باید کنار بذاره. آیا باید ها و هزاره در میان باشد تا به آثار شود. این هفته با خانواده به زیارت آرامگاه حکیم توس شدم. ولی واقعا متاسف که و روستای بیران در نزدیکی و فضای بیران تر این مزار شریف و از همه وقت تر بسته بودن, بودن در بروگی بازید کنندگاه در ساعت شش عصر. آیا یک آجره نیست؟ فردوسی در جان روان ایرانیان جای داره اما متاسفانه وقتی که یک سازمان دو مسئول باز کردن و بستن در باشه اونها به ساعت کار خودشون میگرن امیدوارم که این گفتار بسیار دهنده مورد توجه مسئولان میراز پرهنگی خراسان و شهر توس قرار بگیره تا بارگاه های رو همواره روی ایرانیان باز بگذارن هیچ اشکال نمیبینم که شواهنگ با چه ها و چراخ های پیرامون بارگاه و داخل بارگاه رو روشن گذارن و مامورینی بذارن که اگر ایرانیان خواستن شبه هنگام به دیدار بارگاه فدوسی برن با ابرامش خاطر این کار انجام بگیره امروز اگر نکنیم فردا این کار خواهد شد ما ایرانی ها به داشتن قیلت و جوان مردی برند آوازه و هشت سال نمی جنگیدیم صابر قادر نجات. شاد باشید ناکان ما خون پاک خودشون رو هزاران سال فدایی این کشور کردن و فردوسی در حفشدار همین غیرت و همین فروشکو ایرانی بوده و ایران شکست خورده رو جان داد نیرو داد توان داد ایرانیان رو گلند کرد قرور ملی به ایرانیان داد و ایران رو نگه داشتند درود بر همه اون کسانی که به روان همه اون کسانی که جهان شیرین خودشون رو در راه نگهبانی میهن شیرین تر ایران از راست با درود خدمت و گرامی آقای جنیدی و آقای هدایتی مجری عزیز با آیا رستم و صحراب شخص بودن با درود قاسمی از جم درود بون شهر جم بلکه من رفتم میدونم که چه جای زیبایی است منتر هست نزدیکی اصلوی است. بله من در در قدر رمز خوشبایی شانامه در اون اوایل اینها رو شکافتم که این نام ها هر کدوم نماد یک دوره دوره از زندگی است مثل مثلا که اومر یعنی جان میرا یعنی پیدایی جان در جهان که لازمه جان اینه که بمیره بعد مثلا فرض همه که حوشنگ, حوشنگ یعنی خانه خوب زمانیست که نیاکان تموزه که باله خانه بیزوزن یعنی خانه, خانه های نخوسی نم قار بود تر زیادی تموزه اشته کیشوارزی بعد از خانه اشته کیشوارزی وجود اومد آه. و تحموریس یعنی تخم و اروپا یعنی روبایندی پلون یعنی زمانی که جانبران در آب اهلی شدن این بخش های شان هم نظر به دوررا های خیلی طولانی از زندگی نوکان ما داره کم کم باز با منوچر فریدون دوران سپهر شدن آریانه و با منوچر یه تیره ایرانیان که پیرامون کوه اماونند بودن و پایترشان آمون بوده اینها پیدا شدن بعد از اون تمام این نامها ها نشانه یک تیره ای از تیره های ایرانی است و رستم نماد قدرت سیستان هم باره. ظل نماد سیستانه رستم نماد قدرت سیستانه و سحرابم حالا امشب میبینیم که بالاخره از آن رفتن یه مهاجرتی که ایرانسیستانیان کردن به سوی شمال شهر خشون یه تیرهای تازهای پیدا شد که نام اون شد سهراب سهراب در اولا صهر به زبان پهلوی به زبان کردی همزه به معنی سرخه سهراب یعنی آب سرخ سرخاب اگر به زبان خوردی بگیم جالب اینه که سهر ورد ده که شیخ اجراع از اونجا بنخواست یعنی ورد یعنی به زبان خوردی سهر ورد یعنی سرخ من عکس هوایی سهر ورد رو دیدم اطرافش تمام خاک سرخه بنابراین سهر به همین ترتیب یعنی آب سرخاب اما خوشبختانه در بعضی از متون بütün فارسی سوف رو سوف رو حقوقنده اینی گروهی که در جای زیستند نژاد تبار رسیستانی داشتن و بعد خواستن برگردند به کشور متاسفانه این جنگ میانشون روخ شما اشواز تلفن هایمارو خدمتتون عرض می کنم 220 485 220 485 220 588 20, 582, 8, 2, و شماره پیامتی ما سی هزار پانسد و و هشت است سی هزار پانسد و پنجه و هشت ما با شما تجربه می در همون آغاز با اون شورایی که آید بکردونی دیدشتن من هم یک خوب تحت قرار رو گرفتم که <تصفح> <تصفح> آغاز کردیم به یک به یک قمنامه خیلی خیلی شگفت در نظیر نداره و نباید بگیم شما کمی تحت تاثیر خواهی باید این چشی بگم این تحت تصیل رو خواهیم حتی کلام از دستم رفتم اما باید این رو بخونیم به خاطر اینکه دور هم هستیم با هم هستیم و برنامه ما این فضا رو داره من خفت داشتم در موردی سوال داشتم ما همیشه تاریخ از تاریخ ما میکنن میگن که سخراب کشی این به خاطر اون هزاره هایی که شما میگی؟ این سراب کشی در حقیقت استعدادی سی تو قلب خونه ها پیدا شد. تو همین تعذیه ها و این نه در شما باید بگیم داستان داستان ها. داستان در پهلوی بوده داتیستان یعنی اون چیزی که به داد واقع شده. از روی داد جریان پیدا کرده. این داستان که در همین داستان، معادل باجه تاریخه من نمیدن برای از جلسات گفتم به شما که تاریخ هم ریشه ایرانی داره که موقعی که در خلیفه دوم یه سندی رو آوردن که متعلق به یکی از این ماه ها بود بینه نفردن که این ماه مثلا سال است یا ماه سال گذشته اون موقع هرموزان اسیر اعراب شده بود و او رو آوردن که شما چه میکردید در ایران گفت ما این چیز داشتیم به نام ماه, ماه روچ به زبان پرلیبه ماه روچ یعنی ماه روز و الانم هنوز در زبان بلوچه روج گفته میشه در زبان کردی رژ شده در زبان خراسان روز که الان میگیم روز ماه روچ یعنی شمار روزها و ماه ها رو با اون میسنجیدیم اون بعد مسلم میشد معلوم میشد که حد تاریخی چی هست بنابراین اون گفت که همین کار رو درباره ما بکنید. و مهروچ رو معرب کرد چه ندارن در زبان عربی کرد مورخ و بعد ازش قصد ابو ریحان میگه میگه و جعله یا جعله مسترهو تاریخ یعنی مستر اون رو ساختند به عنوان تاریخ این بژه تاریخ که زبان عربی شناخته میشه ریشش ایرانیه با تمامی تفاصیل اون مهروچ گاه بوده داستان درسته. داستان یعنی اون چیزی که روی به داد رو می داده. حالا این چیزی که شما فرموزید شهراب کشی می و تو قهر به خونه ها می گنن. یه نگاهه. یه نگاهه میگن که همیشه پدر پسر رو اه... کشته. بزرگ قدیم جدید رو از بین برده. یه نگاه این طوری هست حالا میشه از این برداشت رو کرد از این داستان دستان خیلی تر از اینه که تو قهو خونه ها برداشت کنن نه نه نه در جمع های مختلف نه من در قهو خونه ها بیان باز اصلا صحبت داریم میکنون که همیشه این امریکت سهراب کشی بوده یعنی اصلا داستان و رستان و سهراب که نهستش... این همیشه اون گفتن که, که تو... نه سوخن رو گفتن هیچ گفت را کچی نمیده. یک بار اتفاق داده اونم بر اثر اون روابط ندرستی که در این داستان حالا برلسی قاید کرد. ما حتی ت... متوجه به این قفلت باید بکنید. درسته؟ ولی. بله؟ بله. این... این داستان داره ما اینو رو میگه بله, بله جمع بشه. بله کسی که در این کار سوستی به خرجات، نادانی به خرجات، اون رو من معرفی میکنم. امنی فهمید؟ عیزه بفرم اگر دیروز خا لطفی نداشت، ارزش امروز را، ارزش دیروز را امروز باور کنیم. یک بهره از تیر شب در گذشت بر چرخ گردان بگشت شبوه هنگ نام سیزوریز که یک از سوی خورسان برمیاد و نیمه از چرخ گردان میگذاره یعنی از پراز سر میگذره به طرف خورداران یعنی مهرب یه هنگامی که شبوه در خودش نیمه آسمان رو طی یعنی نیمه چپ شد و از چرخ گردان بگشت به طرف خوربران یا مغرب رفت سخن گفته آمد نهفته براز در خوابگه نرم کردند باز انسخن گفته آمد نهفته براز امروز ما در زبان امروز اگر بخاییم بگیم مییم صدای پیش پیش شد هم ببینید چقدر هستی سخن سخون گفته آمد نهفته افته به راز بله خواب گهنه باز پس پند پردند در ماه روی تو خورشید تابان پر رنگ و بوی دو ابرو کمان دو گیس رو کمان به بالا به کردار سر برند از مخصم شیر دل بر جهان آفلین رو بخوند. یعنی نامی از دان را برد. به این حالان هم مثلا که مثلا یه مادری بچهش دارو خودش مگیم ای خدا ای خدا ای خدا در حقیقت نامی از دان رو خونده و نامی از دان بر کسی خوندن هنوز در بسیاری از جه ها جمعید از توجیستان منشنه در برک مده بود یک روز زمستانی در تهران مهمان داشتیم از استادان بزر تاجیکستان که برای درمان مده بود ایران و متأسفانه از جهان رفت اون <تصفح> که ما رفتیم میخواستیم بریم بیمارستان دختر این استاد ترا برفار دید گفت نام خدا برف نام خدا رو به برف برد در یزد کرمان گفتهم شو بختیاری میگن نام خدا نام خدا کم کم واجهی ماشالات رو گرفته در پر بیشتر و ولی هنوز جواهی هست که اینو بگم نام خدا رو ببرن برای پهلوان برای منظره خوب برای حسب خوب برای پرلند خوب برای مثلا دختر زیبا اینطور نام خدا برده میشه از او روسم شیردل خیره ماند بروبر زمان آفرین را بخواند. به فرصی رستم که نام تو چیست؟ چه جویی؟ شب تیره کام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که تحمینم تو گویی در از قنب دونیمم به کردار افثانه هر کرفی شنیدم همین داستانت بسی که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ ندرسیج و هرتی چون این تیز چنگ به تنها و یکی گور بریان کنیم هوا را بشم شمشیر گلیان کنیم چون گرز گران اندر آغایگ به چنگ بدر رد دل و چرم پلنگ به رحنه چون تو بیند اوها ن به نخچیز کردن شتاب نیارد یعنی جراز نبکنم نشان کمند تو در آورد حجابر حجابشی ندارم نشان کمند تو در آورد زه بیم سنان تو خون بارد چون این داستانها شنیدم ز تو بخی لب بدندان دندان گزیدم ز تو بهجستم همی کطرو یای و برد بدین شر کردیزد آباش خورد تو را کنم گرده خواهی مرا نبیند همی مرق و مرا به فرمود تا موبدی پرونر بیاید بخواهد رو از پیدر. میونید این دختر خودش خودش رو خواهد که با این حال دستان پهلوان ایران نماده ایران ایران فرمان داد ای آین ایرانیست فرمانداد که یه موبدی این کار در دستان در زدوش چی میشین؟ ازان هم انجام میرونیم که خواهد کنم در موبد یعنی اون کسی که در به موبت هست او رو میترسند برای خواستگاری هنوز هست این جریان هست خبرتون به شاه هسته رسید از آن شادمانی دلش بردبید به خوشنودی و رای و فرمان اوی به خوبی بیاراست پیمان و پیمان یعنی اون چیزی که امروز داشتوندیم وقت گواهگیان بوده که در یک جلیسه باید هفت نفر حاضر باشند هفت نفر گواه باشند برای در حقیقت پیبند دوکرس این گواه بوده ولی خود اون چیزی که امروز میگیم عقد همون پیمانه به خوب بیاراست پیمانه باز او گشت با او براز به آن شب تیره تا دیر باز در شبنم شدن کنچه تازه پر او یا و قیلل شد پرز در به کام سدف دفن در چکید میانشی که گوه آمد پدید خورشید خرشید تا ز چرخ برند همین خواست افکند رخشان کمند به بازوی راستم یکی مهره بود که هم مهره در جهان شهره بود به دو دادو گفتش که این را بدار اگر دختر آرد تو را روزگار بکیر و به او بدوز به نیچه و فاول گیتی فروز ولی دون که آگر اختر پسر ببندش به بازو نشانه پدر خورشید درخشنده شد بر سپهر می‌بینید گفت که تمام خورشید راه رو کمند گذاش، یعنی هر روز خورشید نمی‌آد. پیشتر از اینکه خورشید بیاد اول کمند خورشید یا اول اون شب اول خورشید دیده میشه. چه خورشید درخشنده شد بر سپهر، بیا راست روگی زمین را به مهر، پریچ از او باز گشت. اما او اون درد هم بازگشت، هم بازنی شریک برای رسته ما اومد شاه بپرسیدش از خواب و آرام گاه این گفته شد مجد دادش به رخش از او شاب من شد دل تاج رخش بی و زین برنهاد شد از رخش، رخشان و از شاه شاد در مواردی که در کلام اشاره به خیر داریم بهتر نیست به جای لغت غیرت از لغاتی مثل حرمت همیت و وقتت استفاده کنیم علی قفوریان مشهد شاد باشید این اگر غیرت بخواییم بگیم اونا هم مثل همینه اما اگر بخوایید بدونید که واژه فارسی برابر این واژه چیه اون واژه بدون این با علف آ آر وقتی که میدن کسی بی آرین خیرت نداره. این آر واژه عربی نیست. هیچ هم در عربی ایرا، ایارا ایرو نداره. این وقتی که واجه آر رو میگیم باید با آب نیسیم و این برابر با اون واژه خیرت عربیه. و درست بی آرین بی خیرت. و اگر من خیرت بکار بردم دلیلش اون بود که اون پرسش کننده گرامی واژه غیرت رو بکار بردم. درود به جای دکتر داخل پرانتز استاد بیان شد درمانگر مناسب تر نیست آبا فردی درمانگر است که برای فقط دکتر پزشک بکار میره و حالا مثلا بیا استاد ادبیات میگم دکتر اون باید گفت استاد منطقا واژه پزشک بر خب وقتی توی بود بعیش از زع بعیش در درد یعنی زدن یعنی زدن درد اورنجی کسی که کاریش برابر با اینی که درد رنج را از بیماران دور بکنه این بعیش از زای عبسوی به زبان فارسی شد به چشک در زبان فارسی شد به چشک در زبان ارمنی به چشک داریم در زبان فارسی تغییر پیدا کرد شد پزشک بنابراین درمانگرم نباید بگیم اگر بخوایم که مخصوص دکتر تبید رو نام ببریم باید بگیم پزشک بهترین واژه است اما اگر کسی باشه که بیاد خونده تاریخ خونده شجادی خونده او رو میتوان استاد گفت با درود بر آقای دکتر فردون جنیدی و آقای هدایتی در شاهنامه در داستان اسکندر از خانه‌ای یاد شده که در جنگ است و در درون آن چشمه‌ای از آب شور است و در آنجا انسانی با سر گراز بر روی تخت خوابیده است میخواستم بنام... می بدانم از افسوده ها سیانه پاس پاس نامش <تصفيق> بشید. شاید باشید قطعا از رخیزه هاست داستان اسکندر تا جایی که دارا کشته میشه به دست جانسکار و جاندار خودش ام... تا اونجا از آن شاهنام هست پس از آن تمام این سه هزار رجی که در داستان اسکندر ما همه افسود است. و از اسکندری قهرمان و خیلی شگفتی ساختن و با دروغ فراوان از جمله همین در یعنی که شما گفتید بیاری از آن اگر به بخش اسکندر برسیم ما اینها رو خواهیم چه با درود آیا نام فردوسی همین نام کنونی بوده است سرکار خانم صور هست. ما از این نامی که براش گذاشتم اولاستیم اطلاعی درستی نداریم. اینا در از بر گذشت فردوسی، دیگران گفتن با کونی اما خود فردوسی از خودش یاد کرده فردوسی چنین دید گوینده یک شب به خواب که یک جامعه می داشتی چون گلاب دقیقی سجای پدید آمدی بران جامعه داستان ها زدی به فردوسی آواز دادی که من خورجز برای این کابوس کی ببینیم خودش خودشو فردوسی میامه اما بعدها در کتاب ها اول او غ شده من نمیتونم که از آغاز بوده یا بربرم اضافه شده باش. موسیقی می بیشتر من تلفن های دوباره ار می که زودتر تماس بگیری سوالات خودتون رو ملببتم که دوستان من بتونن آموزه کنم ۲۲۴85، ۲۱۸ و شماره پیامک موسی ۱۵۵ است.